اعوذ بالله سمیر علیم من الشیطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام و علی نبی نوعاده تاهرین خدمت عزیزان دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز بخیر خیر عرض میکنم الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و الله به انایت الهی از هر گونه گزن آفتی هم به دور مانید ما بحثمون در مجاز عقلی بود سه تا از علاقه ها رو ذکر کردیم علاقه سببیت علاقه زمانیت و علاقه مکانیت علاقه زمانیت و علاقه مکانیت بعد عرض کردیم به شما که که سبب باید سبب اول باشه زمان و مکان هم زمان و مکان مختص باشه تا وقتی میشینه جای من له یا ما له ما بتونیم تشخیص بدیم منظور چیست درست شد پس بنابراین این ستا رو ذکر کردیم ستای دیگه که هست یکی مستریت و دیگری فائلیت و سومی مفعولیت این ستا در زبان عربی هست این ستا در زبان عربی هست چون مفعول و مطلق مستریت مال زبان عربیه فایلیت و مفعولیت هم همین طور حالا خواهیم گفت که چیست مستریت چیست و چگونه مجاز عقلی می شود ببینید اگر من اینطور بگم الان یه مثال میگم شما می نویسید میگم جدد جدد تا جدن و کدد و کدد تا کدد جدد تا جدن و کدد تا جدد جدد ترجدن یعنی تلاش کردی تو تلاش کردنی تاکید دیگه مفهول و مطرح یعنی تو تلاش کردی قطعا و کدد تکدن یعنی زحمت کشیدی کدده یعنی زحمت کشید زحمت کشیدنی رنج بردی رنج بردنی یعنی تو به تحقیق زحمت کشیدی و جدیت کردی این جمله الان حقیقت عقلیست ما جدیت و کد و زحمت کشیدن و نسبت دادیم به فایلش جدد ت اون ت یعنی تو اسناد پیدا کردی به, فعل به فایل خودش کدد ت کده اسناد پیدا کرد به خودش این الان حقیقت عقلیه گاهی اوقات در زبان عربی میان این تعبیر رو همین معنا رو به این شکل ادا میکنند. که مفعولان مطلق رو مفئولان مطلق رو میاران میکنن فائل. بعد اضافه میکنند به اون فائل واقعی که بوده، من ح اون مستر رو میکنن فائل برای اینکه نشون بدن که، مفعول مطلق تحکیدی نمیتونه اینجا واقع بشه به عنوان من هو ما هو اضافش اضافهش میکنن به اون فایل حقیقی یعنی الان جدت میشه جد جدا میشه جدو فایل بعد اون تا که فایل واقعی بوده میشه مضاف زافه میشه جد جدک و دک اگه بخوای ترجمه تحت و لفظی کنی چی میشه تلاش کرد تلاش کردن تو یعنی تلاش کردن تو تلاش کرد و زحمت کشید زحمت کشیدن تو خوب ما زحمت کشیدن که زحمت نمیکشه تلاش کردن که تلاش نمیکنه منظور اینه که تو تلاش کردی تو زحمت کشیدی جوری که انگار زحمت تو هم داشت زحمت میکشید تلاش تو هم داشت تلاش میکرد پس این توش مبالقه است مبالغه است یعنی اگر ما میایم مجاز عقلی اینطوری درست میکنیم مباب مبالغه است میشه جدد جد جدک مثال پنج و کد کدک اصلش چه بوده جدد تا جدن جد و تا کدن بعد مستر آمده شده فایل اضافه شده به فایل واقعی جد به جدوک کده درست شد؟ این خود در زبان عربی هست و ما این رو دیدیم اینو میگم بهش علاقه مسدریت علاقه چی چی بگید مسدریت علاقه و مطلق بودن نگاه کنید توی عبارت توی بحث میگه و فیلم سال الخامس اصن در الفعلان جده و کده الان مستره هما پیدا کرده دو فعل جده و کده به مسترهاشون الان مستره هما ولم یصن دا الان فائله هما و اصنات پیدا نکردن به فایلشون، درست شد؟ یعنی نگفتیم جدد تجددن و جدد تکددن بلکه با اون ساختاری که من گفتم درست کردیم این تمام شد. مثال ششم علاقه فائلیت یعنی چی؟ ببینید اسم فاعل اسم فاعل مثل زارد ق خب این اسم فاعل باید اسناد به کی پیدا کنه؟ اسم فائل به کننده کار یعنی اگر ما ظارب رو نسبت دادیم به زید که کتک زده میشه حقیقت عقلی زید زننده است بهش گفتیم زیدان ظاربون خب درست شد زید کشته بهش گفتیم زیدان قاتلون این اسناد حقیقیست اما توی زبان عربی گاهی اوقات میان اسم فائل رو میارن در شکل اسم فائله آورده شده به جای اینکه اسناد پیدا کنه به زمیری که به فائل کننده کار برمیگرده اسناد پیدا میکنه به اونی که کار برش واقع شده یعنی مفعول زارب گفتیم توش هوه هوست باید برگرده به کسی که زده ولی برمیگرده به کسی که کتک خورده برمیگرده به کسی که بگید کتک خورده اینشه علاقه فایلیت اسم فایل آوردیم گفتیم زننده ولی واقعا وقتی نگام کنیم میریم یه آدم کتک خورده زننده نیست بلکه کتک خورده است تو ترجمه هم معنا میشه کتک خورده ولی اسم فاعل آورده شده اصنات پیدا کرده به زمیر مفعول درست شد؟ حالا من یه مثال میزنم نگاه کنید این آیه رو و اما من سقلت موازینهو و اما من سقلت موازینه فهو وفی ایشتن رازیتن فهو وفی خب <تصفيق> چی میگه این آیه؟ بلدید میگه و اما من سقلت موازینه اما کسی که اعمالش سنگینه میزان اعمالش سنگینه عملش عمل خوبیه یعنی آدمی که مومن است و اهل بهشته و اما من سغولت موازینو فقوه این شخص این آدم خوب این آدم بهشتی فقوه توی ایشتن ایشه یعنی یه نوع زندگی بر وزن فعلتون مستره بش میگن برای نوع این در یه نوع زندگی یه واقع میشه که رازیتن این راضیتها صفت ایشه است توشیه حیست برمیگرده به ایشه توشیه حیست برمیگرده به ایشه این در یک زندگی است که راضی است خب حالا گوش کن در یه نوع زندگی است در یه نوع معیشتی است که راضی است حالا نگاه کنید راضی کیه مرزی کیه راضی شخص بهشتیه که وقتی به بهشت وارد میشه میبینه همه چی هست راضی میشه این راضیه یعنی رضایت دهنده است مرزی چیه؟ اون زندگی بهشتیه که این بهش میرسه اون مرزیه است یعنی پسندیده شده الان ایشه یعنی زندگی بهشتی رضایت دهنده هست یا چیزیست که رضایت برش واقع میشه پسندیده است اونیه که رضایت برش واقع میشه پسندیده است قاعدتا باید اینطور بفرماید فهو فی ایشتن مرزیتن این اهل بهشت این آدم بهشتی که اعمالش سنگینه فی عیشتن در یک زندگی واقع میشه که پسندیده است پسند شده است رضایت داده شده است نه رضایت دهنده است نه پسند کننده است پس این راضیتن اینجا یعنی مرزیت درست اسم فاعل است اما اسناد پیدا کرده به زمیری که مفعوله یعنی چیزیه که فعل برش فعل رضایت بر ایشه واقع شده ایش رضایت داده شده بروست نه رضایت دهنده درست شد پس بنابراین اینجا اسم فاعل اسناد داده شده به زمیر مفعول به زمیری که اسم مفعوله اگه مرزیتن میگفت میشد حقیقت عقلی اسم مفعول اومده بود به مفعولم اسناد داده شده حالا اسم فاعل اومده به زمیر مفعول اسناد داده شده میشه مجاز عقلی خب ممکنه شما ببینید چه فایده‌ای داره خب اون یکی رو فهمیدیم جدجه جد دوک برای مبالغه بود این چه فایده‌ای داره خب اینم اگر نگاه کنید می‌بینید که فایده لفظی داره اگر آیه رو بخونید ها و اما سغلت موازین و من و فی شتم راضیه و اما خفت موازین و و امه و ما ادراک ماهیه می‌بینی که این آخر آیات اگر مرضیه گفته بود با هاویه و بگید هم سیاق و هم موازنه و هم سجعه نبود خب گاه یه اوقات لفظی باعث میشه که ما این رو به کار الان دیگاه کنید یه مثال بزنیم قال الهتیعه من از قرآن مثال زدم و این شعر آقای هتیعه گفته دع من به یه نفری داشته حجبش میکرده به اسم زبرغان ابن بدر به اون میگه دعلمکارم المکارم یعنی این فضایل و مکارم نمیدونم اطعام کردن جود و سخا اینا رو نمید کن ده المکارم. بابا جود و سخا و جود و کرم رو بذار کنار ده المکارم لا ترحل بغیتها نرو دنبال طلب اینها که کرم چیه چه نوع کرمی خوبه این چیزا به تو چه مربوط لا ترحل بغیه بغیه یعنی طلب نرو دنبال طلب اینها نمی گفتم بال اینکه کرم چیه، جود چیه اینطور بخوای چیز کنی. نه گفت. به تمکسر جو. بشین. چی گفت، گفت بابا این به با قول خودمون قنپزا به تو نیومده که کرم و جود و اینها. مرکد اینارو. نرو دنبال این چیزا. بشین سر جود. چرا این فیعنی زیرا؟ زیرا تو انکه انت، تو تو انت تاكيد. زیرا تو اتا ملکاسی تو تائم هستی و کاسی خب تائم اگر به معنای خوراننده باشه و کاسی هم به معنای پوشاننده باشه خب این که اصلا متضاد میشه با قبل زیرا تو کسی هستی که به مردم غذا میخورانی و مردم را میپوشانی خب این اصلا میشه بالاترین جود بلکه منظور اینه فر این انت المطعوم والمکسوف زیرا تو کسی هستی که غذاشو دیگران میدن اگر ندن بهش بخوره چیزی دهنش نزارن گشتگی میمیره و تو کسی هستی که دیگران میپوشاننش اگر بهش لباسی چیزی ندن نخت میمونه تو شکم خودتو نمیتونی سیر کنی لباس به تن خودت نمیتونی داشته باشی داری فکر میکنی چهجوزی جود جودو کرم کنی خفهشو بشینی سر جا اینجا تائم اسم فاعل کاسی اسم فاعل توش زمیره دوتا تا و برمیگرده به این کافه ان نکا یعنی کافه ان نکا غذا دهنده نیست پوشاننده نیست به قرینه که داشته حجم میکرده بلکه غذا داده شده و پوشانده شده هستش حالا چرا نگفت فعل نک انت المطعوم و المکسوف قو خب بگ میگفت قافیه شعرش جور در نمیاد وزن شعرش جور در نمیاد ما همینو رو میفهمیم ازش اما به غرینه فائلیت اسم فائل آمده اسناد پیدا کرده به زمیره بگید مفکور دعیل مکارم لا ترحل بغیتها تا امال کاسی مقعود از توی این لا این جمله بدل است از برای دعیل مکارم بشین سر جاد نرو دنبال این حرف. این اومده به جای اینکه ول کنین کرام و جود رو فکر کن کرم و جودو کجا میری دنبالش به اکثر اجاد تو شکم تو نمیتونی سیر کنی خودتو نمیتونی بپوشونی فکر میکنی چجوری یک حاتم تایی جودو کرم میکنه چطور جودو کرم باید چطور باشن حرفا به تو چمهن اما مثال بعد رو ببین مثال بعد این توش تایم و کاسی دو تا اسم فایل بود به معنای مدعوم و مکتوب این دوتا تا هفت و هشت دو تا اسم مفعولند همونه اسم مفعول اگه اسناد پیدا کنه به زمیر مفعول میشه حقیقت رقلی. ولی اسناد کرده پیدا کرده بگم یعنی ما مذروب گفتیم توش یه هوست و اگه برگرده به کسی که کتک خورده میشه حقیقت تربی ولی اگه برگرده به کسی که کتک زده به زارع خب میشه مجاز عربی این اونطوریه الان نگاه کنید و مقالات اعلی خداوند تعالی فرموده و از قرائت القرآن، پیغمبر هنگامی که تو قرآن میخونی، هنگامی که تو قرائت قرآن میکنی، جعل نباید نکرد و بین لذین لایومنون. ما قرار میدیم بین تو و بین کسانی که ایمان ندارند. ما بین تو و کفار قرار میدهیم. اونهایی که ایمان باقی آخرت ندارن قرار میدیم چی؟ جهلا بینکه و بین اللذین لا یومنونه بالآخرت بینکه متعلق با عامل مقدر مفهول دومه این هجابا مفعول اول جهل است قرار میدیم بین تو و بین کسانی که ایمان به آخرت ندارن هجابی یه پردهی هجابا مستورا مستور یعنی چی؟ یعنی پوشانده شده یعنی الان یک کسی چادر سر میکنه خب اون چادر میشه ساتر اون شخص میشه مستور خب چادر هجابه هجاب ساتره یا مستوره؟ خب ساتره ساتره اینجا زمیر مستورن برمیگرده به هجاب در صورتی که هجاب ساتره مستور بگید نیست بس ولی ما تو ترجمه چی ترجمه میکنیم هجابی پوشاننده هجابی که تو رو پوشاند از چشم دشمنان. اینها وقتی که تو قرآ میخونی میخوان بیان به تو حسای ادب کنند. سنگ بزنند. ما بین تو و بین اونها هجابی قرار میدیم؟ که این هجاب پوشاننده توست تو رو نمی همینطورم هم بود میآمدن میخواستن حسای ادب کنند میپرسیدن از شخصی که بغل پیامبر بود که کو نمیدیدند. هجابا ساترن اما هجابا مستورن برن. حالا اگه نگاه کنید برید آیه رو نگاه کنید تو سوره می میبینید ما قبل و ما بعدش با کلمه مستور که آمده هم سجع میشه اگه ساترا میگفت هم سجعه نبود لحظه از القرآن قرهت القرآن فیده شد جهلا جهلنا بین که و بین الذین لا یؤمنون بالاخره حجاباً و مقالته حالا حالا این آیه رو ببین ان كَانَ کان وعده معتی وعد خدا اون وعده‌ای که خدا میده آتیه یا معتیه میاد یا آورده میشه میاد اِنَّهُو کان وَعَدُهُو آتیم توی معتیم یه یعنی زمیره برمیگرده به وعد که اسم کانه است درست شد و وعد آتیس آینده است نه آورده شده وعده خدا میاد اطا امر الله فلا تسته جلو وعده خدا میاد پس این معتی که اسم هم. یعنی ترجمه میشه نهو و او یعنی خدا وعده او آینده است وعده او خواهد رسید درست شد وعده او خواهد رسید نه وعده او رسانده شده است پس بنابراین اینجا هم معتی به معنای آتیست نگاه کنید بخونم براتون میگه که وفی المثال سادسه یقول الهتیعه هتیعه, هتیعه میگه لمن یهجوه به کسی که داره اونو حجم میکنه یعنی زبرغان ابن بعد بهش میگه وقعد بشین سر جات وقعد ف انک انت الطائم تو کسی هستی که خورانده میشی و پوشانده میشی تو شیکم خودتو نمیتونی سیر کنی تن خودتو نمیتونی بپوشونی لخت و پتی هستی و گشنه چطور الان اومدی داری کمپوز میدی که کرم باید چطور باشه چطور باشه خیلی حرف بدی وشته فهمت از انه بعد بعدن یقول شما فکر میکنید بعد از اینکه به اون برگشته گفته لا ترحل تلب مکارم بغیه یعنی طلب ها هم یعنی مکارم نرو دنبال مکارم به تمکسل بعد که اینو بهش گفته یقول لهو انک تتطعم غیرک انک تتطعم غیرک و تکسو بعد به گفته زیرا تو مردم را میپوشانی پوشانی و مردم را میخورانی خورانی تو خوراننده و پوشاننده از اینکوری بگه که این غلطه که نمی شه کنچه چیز داشته حج میکن لا انما اراده بلکه منظورش اینه وقعود کلن کل صفت مشبه هست از کل یعنی سغوله کل یعنی سغیل یعنی سنگین یعنی سربار کل به کسی میگن که سرباره خرجش افتاده گردن یکی دیگه. درست شد؟ میگه منظورش اینه کلن بشین سر جا در حالی که سربار هستی علا غیرک بر غیر خودت مطعومن مکسوا در حالی که خورانده میشی و پوشانده میشی و اصنده الوصف مشتق وصف مشتق یعنی اسم فائل اسناد داده شده اسم فائل تا و کاسی الوصفو و المصند درست شد وصفی که اسناد داده میشه به فاعل یعنی اسم فاعل یعنی فعص اسم الفاعله الوصف و المصند و یعنی مشتقی که برای فاعل درست شده یعنی اسم فاعل اسناد داده شده چی؟ الا زمیر المفعول به زمیری که توشه ولی برمیگرده به مفعولان به و در دو تا مثال بعدی و فلمسال این اخیره جاعت کلمت و بدل ساتر و معتیان بدل آتین آتن اومده جای اسم فایل فست اومده اسم المفعول مکان اسم فایل اسم مفعول اومده جای اسم فعال نشسته و یا تاییاب اینطور بگونه به اینطور بهتره و هنشه فقل فقول اصنده الوصف و للمفعول المفعول الا این بهتره اسمات داده شده مشتقه که برای مفعول بنا شده ساخته شده به زمیر فاعد اصلال داده شده به فد این مهم این بهتر. خوب حالا نگاه کن. میگه فعتتر ترا منل اممسلت کل حالا شما از تو این شیشتا علاقه ای که ما گفتیم تو این مثال ها فتتر آم منل از این مثالها ها می افعال نه افعن اینکه فعلهایی تو بعضیاش فعل بود. مثلا توی و یمشی فعل بود تو و بنا هم ربن الاز فعل بود تو بعضیاش فعل نیست تو ازدهمت فعل بود تو بعضیاش فعل نیست مثل سائم و قائم تو جده و کده فعله درست شد باز توی طائم و کارسی مستورن معتیم شبه فعله نگاه میکنید ببینید فعل او ما یوشبهوها یعنی شبه فعل لم توسند الا فائل حل حقیقی به فائل حقیقیش اصناد پیدا نکرده بلیل سبب الفعل او زمانهی او مکانهی او مسترهی بلکه اصناد پیدا کرده فعل یا شبه فعل به سبب فعل زمان فعل مکان فعل مستر فعل یعنی مفهول مطلب که میشه علاقه سببیت زمانیت مکانیت مستریت و هم صفاتن صفات و این مشتقاتی مثل طائم و کاسی، مستور، معتی اینکه که صفاتی، مشتباتی کانت من حقه ها انتوسن دلال مفعول حقش بوده اسناد پیدا کنه به مفعول اما اسناد پیدا کرده به چیزی که فایله مثل مستورن، مثل معتین اسناد پیدا کرده به فایل چون هجاب فایل ساتره وعد آتی آینده است و اخران و یه مشتقات دیگه کان یجبا انتوس نده ایلال بعد باید اصنات پیدا میکرده به کننده کار مثل تائم، کاسی اصنات پیدا کرده به زمیر مفعول کسی که خورانده میشه و پوشانده میشه و میلن میگه حالا یه نفر میگه آقا ما سخت میشه اینکه شما اسم فاعل میگی میگی اسنات پیدا کرده به زمیر مفعول اسم مفعول میگی اسنات پیدا کرد به زمین فایل ما قاطی میکنیم اینارو میگه نه قرینه هست از نظر معنا شما کاملا میفهمی که اینجا اسم فایل در معنای واقعی خودش نیست اینجا اسم مفعول در معنای واقعی خودش نیست آشان اینو میفهم. و میفهمی که یه صنعت لفظی یه انسجام لفظی یک هم شکلی لفظی باعث شده که اینطور گفته بشه و منال و خیلی ساده است ان تعرفه اینکه که بشناسی آن لحظه ال اسناد غیرهعرقیین، این اسناد اسناد واقعی نیست. چرا الان ال اسناد ال و اسناد ول فیل افایل هن هعرقیین چون اسناد اینه که فعل به فایل واقعی جست بده و من هو وله ما هو وله خودش. فل اسناد ازن هر مجازی اسناد اینجا چند مجازیه و یوسام ما بر مجاز العقلی، میگن مجاز عقلی. البته اسم دیگر هم داره مجاز و حکمی هم میگن مجاز در اسنادم میگن. از مشخصه چرا این اسما گوش روش نه انه المجاز لیسه خیلی زیرا تو اینجا مجاز در لفظ و لغت نیست کل استعارت در مجاز المرسد مثل استعاره گل آقاش مشابهت بود مجاز المرسد گل غیر مشابهت و تو لفظ بوده با بلکه خیلی اسناد بلکه اینجا مجاز در اسناد و هو یدرک و بله عقل و این اصنادم با عقل درک میشه بهش گفتن مجاز عقلی مجازه در اسناد که دیگه مشخصه گاهی میگن مجاز در حکم حکم هم یعنی اسناد. تمام شد حالا ما توی این مثال هایی که نموزج کتاب بود دو تا مثال رو برای شما نگه داشتیم نگاه کنید بخونم یکیش مثال دوم لا اسمل یوم من امر الله الا من رحم اینو خوب توجه کنید حضرت نوح کشتی ساخت بعدم گفت هرکی بیاد تو این کشتی سالم نمینه تمام اونهایی که به این کشتی وارد شن سالم نمونن هرکی هم به این کشتی وارد نشه ایمان نیاره غرق خواهد اینو گفت پسر نوح پسر اهلی نبود او نپذیرفت حرف پدر رو دعدم به باباش گفت من میرم بالای یک کوه بلند اون کوه دییه آب تا اونجا که نمیاد منو حفظ میکنهم سعاوی الی جبل یعصمنی پناه میبرم به کوهی که خیلی بلند باشه و منو حفظ کنم پدرش برگشت بهش گفتش پسر جان لا آسم علیوم من عمر الله الا من رحم آسم یعنی حافظ آسم یعنی حافظ معصوم یعنی محفوظ خب این که نوح به او میگه لا آسم علیوم من عمر الله الا من رحم معنای اصلیش این میشه دیگه یعنی لا معصوم یه آسم اسم فاعله یه توشه ولی برمیگرده به حفظ شده نه حفظ کننده حفظ کننده خداست حفظ شده یعنی اون مثل افرادی که اومدن تو کشتی حفظ شدن محفوظ لا آسمه علی اومم امر الله یعنی لا معصومه یعنی لا محفوظه هیچ محفوظ و نگه داشته شده ای امروز از امر خدا از عذاب خدا نیست هیچ کسی امروز محفوظ از امر خدا نیست الا من رحم یعنی الا من رحمهم الله مگر کسانی که خدا بهشون رحم کرده یعنی کی؟ یعنی همین که تو کشتی یعنی الا اهل این کشتی پس نوح به پسرش چی گفت؟ گفت لا معصومه لا محفوظه الیوم من عمر الله در امروز که خدا اراده عذاب کرده هیچ کسی محفوظ از امر خدا نیست مگر کسانی که خدا بهشون رحم کرده لطف کرده و آمدن تو این کشتی اونجا آسم به معنای معصوم میشه ما این نمیفن شما گفت برگشت گفتش من میرم بالای کوه گوه منو افس میکنه معصوم باقی محفوظ میمونم گفه کسی محفوظ نیست از عذاب خدا مگر کسانی که خدا بهشون لطف کرده اومدن تو این کشتی خب. این یه معناه آیا میشه اینجا آسم به معنای حافظ باشه بله توی یه تفسیر دیگه اینطور گفتم اون موقع میشه حقیقت حقیق که نو گفته باشه لا آسم علیه و منمر الله حافظی از عذاب الهی امروز نیست امروز حفظ کننده از عذاب خدا نیست الا من رحم مگر کسی که خدا بهش لطف کرده یعنی من هیچ کسی نمیتونه امروز کسی رو حفظ کنه از عذاب خدا مگر کسی که خدا بهش اجازه داده مگر کسی که خدا بهش رحم کرده یعنی من پدر من نو. که به اذن الهی میتونم امروز از عذاب خدا یه در حفظ کنم این یه اون موقع آسم به معنی حافظه یعنی کوه نمیتونه حافظ باشه من میتونم چون من از طرف خدا لطف شده بهم به و این اجازه بهم به داده شده پس این اگر حالا ببینیم کدومش با مجاز عقلی این قشنگ در میاد آیه یا با حقیقت عقلی ببینیم با مجاز عقلی که به معنی این باشه هیچ کسی این روز از عذاب خدا محفوظ نیست هیچ که در امان نیست از عذاب خدا مگر کسانی که خدا بهشون لطف کرده و آمدن تو این کشت این معنا قشنگتره تا اینکه بگه هیچ کسی نمیتونه از عذاب خدا کسی رو حفظ کنه مگر کسی که خدا بهش اجازه داده باشه یعنی مَلَک درست معنا ولی خب اون اولی با سیاق آیه نگاه کنید معنای مثال رو میگه دو لا عاصم علی و ممنع من ال المعن لا معصوم علی ممنع من الله الا من رحم الله یعنی همین کسانی که تو کشته اگر رحمهم خو هم گفته خو برمیگرده به من به اعتبار لفظ چون لفظ من مفرده والله میتونه بگه من رحمهم مد با به اعتبار معنا فسم الفائله اسند اله المفعول اسم فاعل اسناد به دل کرده به ضمیر مفعولی و حاضر مجازون عقلیون علاقته المفعولیه حالا ببینید اینجا ما گفتیم هر چیزی که توی عبارت هست اسم مجاز رو قرار بدیم زمان هست بگیم زمانیت مکان هست بگیم مکانیت سبب هست بگیم سببیت مستر هست بگیم مستریت حالا فاعل هست بگیم فاعلیت مفعول هست بگیم مفعولیت این برعکس میگه چون اصنات پیدا کرده به زمیر مفعول بهش گفته مفعولیت ولی ما تو اصطلاح خودمون به این گفتیم چی؟ فایلیت تا همش توی مجاز مرسل هم گفتیم اسم مجاز مرسل از اونی در میاد که تو عبارت هست یعنی اگه سبب ارادش گفته شده اراده مسبب میگیم سببیت مسبب گفته شده اراده سبب میگیم مسببیت اون قاعدت رو اینجا پیاده میکنیم خب اینجا اون باید بگیم چی؟ و مجازون اقلیون علاقتوهو الفایلیه تو چون فایل گفته شده و اراده مفعول شده بگیم فایلیه بریم سر مثال پنجم مثال پنجم خوب دقت کنیم مالا آقای البته اینجای ای اون مطلب من رو توی هاشیه پایین گفته توی همین پایین اجابه گفته یجوز انتکون آسه تن فی حقیقتها حقیقت هر نگوش و یکونر معناه اون موقع معنایی میشه لا شیعه یعصمون ناسم من قضاء الله هیچ چیزی نیست که حفظ کند مردم را از قضاء الهی امر الهی یعنی از این عذا الا من رحمه الله منه مگر کسی که خدا از بین مردم بهش لطف کرده باشه یعنی من اینو ثاين دهوت اعلی و من خدا با لطفی که کرده و به این شخص اجازه داده در واقع خدا داره اونو حفظ می مثال پنجم را نگاه کنید عطا یا جمع عتیه است یعنی بخشش ها کرم ها لطف ها عطایا جن یعنی دیوانه شد جنون یعنی دیوانه شدن نرود شد؟ این معنای لولیش اوزه یعنی در پناه قرار داد اوزه یعنی در پناه قرار داد در پناه قرار داد اوزا رقیه یعنی دعا یه چیزهایی می مینداختن گردن کسی تا چشم زخم به اون رس نرسه این شما رقیه جمعش رغا طالبم یعنی سائل کسی که محتاجه شما یه چیز میدید این طالب شما وقتی به یه نفر یه چیزی میدی اون شما رو دعا میکنه میگه که خدا تو رو از چشم بد نگهداره داره خدا تو رو حفظ کنه دعا میکنه خب این روحیت طالب یعنی همین دعای شخص سائل و طالب حالا گوش این شعر چی داره میگه داره یه نفر رو مت میکنه به کرم داره یکی رو مط میکنه به کرم میگه عطاهای این شخص هدیه های این شخص اینقدر بزرگ و پشت سر هم و زیاده که اگه کسی بشنوه میگه این دیوانه است بابا آدم عاقل که اینطوری عطا و کرم نمیکنه این دیوانه است نمیفهمه درست شو یعنی اگر کسی عطاهای او رو ببینه و عطاهای او رو بشنوه به خاطر کستش و به خاطر زیادیش میگه این دیوانگیه عقل نداره این کارو میکنه آدم عاقل که این, قا... این طوری کرم نمیکنه این دیوانه است میگه خب چرا تا حالا بهش نگفتن دیوانه؟ چرا نگفتن؟ میگه به خاطر یه چیز دعای اون کسانی که بهشون میده اونا دعا کردن دهن مردم بسته شده ولو مردم میگفتن این دیوانه است آدم عاقل اینطور عطا نمی کنه فهمیدی چ گفت خیلی پشنگیه ها حالا نگاه کن میگه تکاد و عطایاهو نزدیک است نزدیک می باشد تکادو گفته یعنی چیزی نمونده عطاهای این شخص درست شد؟ قاعدت هم باید بگه توجن و جنونن به تو توجن و جنونن معنام همینه نزدیک از عطاهای او دیوانگی شمرده شود دیوان بودنی دیوانگیی تو جن و جنونند نزدیک از عطایای او دیوانگونگی به حساب بیاد دیوان بودنی تو جن و جنونند تو جن و برمیگرده به عطایا جنونن هم مفعول مطلق نزدیک از عطاهای او توجن و جنونن حالا او توجن و جنونن و طبق اون چیزی که من گفتم که مفعول و مطلق و بیاریم جای فائل یا نای فائل بعد زمیر که تو توجن هست ببریم بکنیم مضافنه لایی چون جنون مسترد اون موقع توجن جنو میشه یوجن میشه جن نو جنو میشه تکاد و عطایاه و و جنونها درست شده نه؟ یعنی عطایای او نزدیک از دیوانگی شمرده بشه دیوانگی به حساب بیاد معنا اینه ولی میگه یوجن و جنونها یوجن رو نسبت داده به جنون اضافه کرده به اون نایفایل حقیقی ها. چون اصل عبارت بود تو جن و جنونن تو جنو هیه جنونم بعد جنونم شد جنونو نایفاهه تو جنو اون زمیر هیهش اومد مضافنه لحش شد شد جنونوها درست شد بعد اون موقع چون جنون مذکره تو جنو شد یو جنو شد یوجنو جنو یو جنونها جنونوها یعنی نزدیک از عطاهای او دیوانگی به حساب بیاد نزدیکه چیزی نمونده عطایاشو بگن دیوانگیه ازالنم ها زمانی که در پناه قرار ندهد این را به روحیت طالب به دعای شخص سائل یعنی اگر اونها رو با دعای شخص سائل حفظ نکنه چیزی نمونده که به عطاهاش بگن دیوانگیه عطاهاشو دیوانگی به حساب بیارن که نمونده عطایای های او رو دیوانگی به حساب بیارن اگر اونها رو پناه نده حفظ نکنه با دعای شخص طالب یعنی ساحب پایین نگاه کنید میگه که یعوزها یعنی یحسنها حفظش کنه یحفظها یحفظها و رقیه الاؤزه اون دعایی که می جمع و ها رقا جمعش رقا معنا کردیم این شعر رو نگاه حالا من چون شعر رو قشنگ معنا کردم برای شما دیگه راحت می‌تونید بفهمید میگه تکاد و عطایاه یا جن و, و جنونها ها اسناد فیل یعنی یوجند و مستر یعنی جنون مجاز و علاوته المستری یا تو اصناد پیدا کرده به مستر. اصلش باید چجوری می شد تو و جنو جنونن که تو جنو یهیت یه دوشه جنونن هم مفعولان مادم خب این بحث به طور کامل مجاز عقلی تموم شد حالا بیای سر یک بحثی داره بلاغت المجاز المرسل والمجاز العقلی زیبایی های مجاز مرسل و مجاز عقلی چون برای استعاره اگر یادتون باشه گفتیم بلاغت آقا رو خوندیم که یک مبحث سه صفیه کامل بود اینجا برای مجاز و مرسل و مجازه حالیان حالا من براتون توضیح دادم اینو یعنی این چیز که الان میخوام بخونم از چیز نیست که مجاز باید یه فایده ای دار یه فایده کلی تو مجاز توسعه سخنه آه؟ یعنی من میتونم هم حقیقت بگم هم مجاز بگم خودش دست من بازه دیگه. توسعه سخن یه فایده اصلی است بله اگه قرار ما فقط حقیقت حرف می زدیم دستمون بسته بود یعنی نصف ابزار رو از دست داده بودیم الان آچارامون زیادتر شده هم حقیقت داریم هم مجاز داریم این فایده اصلی تو همه جا هست که مجاز به ما دستمون رو باز می زاره توسعه سخن به ما میده. این فایده وجود داره بله اما اما گوش کنید مجاز ها هر کدومشون یه فایده خاصی هم توشون هست مثلا تو این مجاز به علم عقلی به علاقه فایلیت و مفعولیت یادتون؟ من گودم بودم ساختار سجع آیه رو درست میکنه هجاباً مستوراً گفتیم با آیه قبل بعدش نگاه کنید یا مثلا فق و وفیشت راضی دیدید مثلا فایده لفظی داشت یا مثلا فرض کنید جعل و اعصابه اقم فی آزانه هم تو مجاز مرسل اعصابه گفته بود انگشتان و منظورش سرانگشتان بود گفتیم یعنی چی ها گفتیم یعنی اینکه سرنگشتانشون تو گوششون میکنن نگفته گفته انگشتان مبالغه کرده یعنی اگه بتونن کل انگشتام تو گوششون بکنن میکنه مبالغه توش تو علاقه مستریت الان یادتونه من گفتم وقتی میگیم جد, جد کد کدک دوک ها یعنی تلاش تو هم تلاش کرد زحمت تو هم زحمت کشید ظاهرا اینطوریه نه تنها تو خودت داشتی زحمت می‌کشیدی زحمت کشیده آدم داشت زحمت می‌کشه مبالغه توشه اما تو جددت جدن و کد کدن فقط یه مبالغه تو اون مفعول مطلق از اینجا مبالغه خیلی بالاتر رفته یعنی حسابی گفتیم تو زحمت کشیدی درست شد پس مجاز خودش یه فایده های ویژه گاهی اوقاتم هم یادتون باشه گفتم که چی میکنه ایجاز درست میکنه کمتر مثلا یونز زلولک من منسماه رزقا از آسمون برای شما رزق میفرسته خب ما میدونیم که به غرینه یونز زلولک من منسماه از آسمون رزق نمیاد از آسمون چی میاد باران میاد بارانی که سبب رزق میشه مسببه. پس انگار این طوری گفته یونست زلولک و منست سماعه مترن یو به و رزقن از آسمان برای شما بارانی میفرسته که باران سبب رزق میشه خب ببینیم اگه گفته بود یونست زلولک من منست سماعه مترن یو به حقیقت گفته بود مجاز مرسل نبود اما کلام گندهتر بود وسیع بود کمتر گفته معنارم رسونده ایجاز توشه پس مجاز دارای است. و این فواد به ما کمک میکنه فواعد به ما کمک میکنه پس فایده اصلی مجاز توسعه سخنه بعد برای موارد جزئیش هم ما بگردیم فوایدی رو پیدا میکنیم که من این فواید رو در طول درس که با هم خوندیم به طور کامل برای شما بیان کردن حالا نگاه کنیم بلاغت المجاز المرسله ول مجاز العقلیه که به این مجاز عقلی گفتیم مجاز در اسناد مجاز در حکم هم میگن یا حتی اسناد مجازی هم گای اوقات که ولی اون اسم اصلیش که معروفه مجاز عقلیست اذا تحملت انواع المجاز مرسل اگر انواع مجاز مرسل علاقه سببیت مسببیت علاقه ماکان علاقه ما یکون علاقه حالیت محلیت شد هر کدوم رو شما از این علاقه هایی که خوندیم از مجاز مرسل رو توش دقت کنیم و و مجاز عقلی رو علاقه سببیت زمانیت مکانیت مستریت وایلیت، مفعولیت این شیشتایی که گفتیم اذا تعمل که انواع المجاز المرسله و عقلیه رعی تعمل ها فلقالبه تو عدی المعنم مقصوده به اجازه میبینی که اینها غالبا معنای مد نظر رو میرسونند یه مقدارم توش ایجاز هست هست.ع همون معنا اجازه. پس ایجاز یکی از فواد مجازه ها؟ یکی از فواد چیه ؟ مجازه؟ الان مثلا تو مجازه اقللی، ما میگفتیم بنا امررب 0 تو مثال دوم. بنا امررب 0 آ مدی ن شهر فستاد رو ساخت. خب می مثل که هندوستان، پادشاه دوستان دوستان رفتح کرد که من مسازیدم خب اگر شما اینو بخواید به شکل حقیقت بگید باید بگید بنا عمال و امر ابن الاز. به امرهی مدینه الفسطاط یعنی تو بگید دیگه بگید بنا عمال و امر ابن به امرهی یعنی به امر امر ابن الاس مدينة... ساختن کارگران و کارگزاران امر ابن به دستور او درست شد شهر فستاد رو الان اون امال به امرهی اینا نیست کلام کوتاهتر شده ولی همون معنا فهمیده بشه ضمن اینکه توش مبالغه هم هست یعنی ما انگار میگیم که این آدم انگار همه کار دست این بود پس توش ایجاز هست درست شد یا تو اون یونز زلولک من از رزقا که من گفتم اگر شما بخواید به طور واقعی بگید حقیقی بگید باید بگید یونز زلولک و من از سماه یسبب رزقا اذا تعملت انواع المجاز المرسله بلا عقلیه رعیت انها فلغالبه تو حدی المعن المقصودا به اجازه. فرزان گلت حالا مثال خودش میزنه ما مثالها قبلی هر عمل قائد و الجیشه. القاهد یعنی این فرمانده این فرمانده شکست داد این لشکر و لشکر دشمن داد. این فرمانده لشکر دشمن را شکست داد حالا فرمانده شکست داد مثل اینکه که ما گردیم هندوستان رو نادошاه فرد کرد نادошاه فرد کرد خوبیه الان مجازه بگید عقلیه به علاقه سببیت مجاز عقلی حزمه رسناد دادیم به وقایع قائل سببه منقوله واقعی نیست من واقعی لشکره اگه گفته بود حزمه جیوش الواعده جيش جی الواعده الجیشه جيشه لشکر این فرمانده لشکر دشمنو شکست حقیقت یا این قررنا المجلس و کذا اسناد داده به مکان مثل ازدهمت شوار والغاهر قرره را یعنی تصویب کرد تصویب کرد المجلس یعنی این مجلس شورای اسلامی کذا فلان ترد بود فلان لایه هر بود. حالا مجلس تصویب کرد یعنی در دیوار نه یعنی اهل المجلس آن نمایندگاه مندوبو المجلس خب اگر ما میگفتیم جیشالغاید یا مندوبو المجلس حقیقت میشد ولی الان اینطوری که میگیم بازم همون فهمیده میشه ولی خب مختصرتره کان ازالکه اوجاز این خیلی مختصرتر از این است که من انتقوله تقول هزمت جنود القائده الجيش یا بگید قرر اهل المجلس مندوب المجلسه المجلس کذا میگه مگه ایجاز چیز کمیه آدم کم بگه معنای زیاد بفهمونه مگه بده این خیلی خوبه که به هجی جه ها نگه و ناشک که عمل ایجازه و نزروب البلاوت شک نیست که ایجاز نوعی از انواع بلاوت یکی از مذایع بلاوت ایجاز بسم الله به این به این خوبی خب یکی از فایده فایده دوم فایده اصلی هم که گفتیم توسعه سخنی که این نگفتیم هنکن مذهران آخر لبلاوت یک پدیده دیگری هم برای بلاقت هست فی حازین مجازهی در این دوتا مجاز خبه المهانتو و اون عبارت است از مهارت فی تخیره لعلاقت بین المعنه الاصلی و المعنه المجاز ببینید مجاز اصلا مجاز صحبت کردن مالو کارها آدمهای های عدیبه آدمهایی که سطح زبانیشون بالاتره، اینهای مقداری به قول خودمون به طرف مجاز میرن قصه سخن دارن ولی آدم های عادی تو کوچه بازار اینا معمولا حرفشون همون به شکل حقیقی خودش میگن. درست چون اینکه یک نفر بیاد استعاره به کار ببره یه چیزی رو به یه چیزی تشبیه کنه مشبه و حث کنه مشبهانبه و جاش بذاره یا یه چیزی رو به یه چیزی حث کنه مشبهانبه حتی تشبیه کنه مشبهانبه و هست کنه یکی از لوازم خواسته شو بیرست داره مکنیه درست کنه این مال آدمهایی که مهارت داره مجاز چه مجاز مرسل چه مجاز عقلی چه مجاز استعاره یه مقدار تفاخر میخواد تسلط بر سخن میخواد پس مجازگویی نشانه بگید مهارت و خبرگی در سخنوری است. هناکم مظہرون آخر للبلاغ فی ازن المجازید. درست شد یعنی مجاز مرسل مجازه. مهاره که عبارت از از مهارت اون شخص فی تخیّر در انتخاب فی تخیّر علاقت بین المعنا الاصی و المعنا مجوز باید علاقه درست کنه دیگه. آه. این میتونه بلده چگونه ایجاد علاقه کنه سبب رو بگه و اراده مسبب کنه مسبب و بگه اراده سبب کنه لازم رو بگه اراده ملزوم کنه حال رو بگه اراده محل کنه به حیث و یکونه المجازون مصورن المقصود جوری هم باید مجاز بگی که اون مجاز تصویرگر معنای مقصود باشه اونم شعید تصویره به بهترین شکلش وقتی میگه جعل و اصحابه همون فیازانه همه میفهمن که سرانگشتانشون رو میکنن تو گوششون به قرینه جعل و فیازانه ولی همه باز متوجه میشن که چی؟ او مبالغه کرد یعنی اینقدر آدم های عوضی هستن که اگه میتونستن کل انگشت رو تو دهانشون بکنن میگردن به بهتری شکل تصویر میکن کما فی اطلاق این علم جاسوس چشم میگه و اراده جاسوس میکنه زبان میگه و اراده سخنگو میکنه بازو میگه و اراده گلده رو میکنه پس بنابراین مثل چی؟ کمافی اطلاق العین علل جاسوس و ازان گوش میگه و اراده بر این میکنه ولی از الان سریع تأثیر به میگه این آدم بابا همش گوشه این که همش گوش نیست این با داره دست داره انگوش داره میگه انگار همش گوشه هرچی بگی قبول میکنه مثل ما میگه این اینو نگار کن همش شکمه یعنی خیلی پرخوره شکم رو آوردیم کردیم کلش گوش رو آوردیم کردیم کلش درست شد نه چشم رو آوردیم کردیم چشم میگیم و اراده کل میکنیم یعنی کلش چشمه یعنی جاسوسه شکم میگیم اراده پرخور میکنیم یعنی کلش شکمه یعنی مبالغه توشه دیگه. گوش میگیم و منظورم اینه که غیر از گوشی چی نداره همش گوشه فقط میشنوه سود تأثیر میگیره شد؟ و اوزان علا سریع تأثیر بلوشاید حالا نگاه کنید ول خوف ول خافر خوف پای شتره هافر سوم پای اسبه درست شد مثلا میگه رکبنا علل حوافر خب میگه رکبنا علل حوافر بر سوم ها نشستیم جوز گفته سوم گفته آه؟ ولی منظور بگید اسبان جز او گفته چون ما میدونیم که این جزء سوم مال عصفه خوفم مال شطره جزءو او گفته و اراده کل کرده ول خوفه ول هافر علال جمال. مال خوف شطران ول خیل مال عصفه فل مرسل. جز او گفته اراده کل کرده و کما فی شه یه را سببیه اصناده میدیم یه چیز رو به سببش بنا امروب نلعاص مدینه تلفستان یا یزید بگو ابناهم که من مثال زدم از فرعون یا مکان اسمات میدیم به مکان قرن ال مجلس و کذاب آه منظور اهل مجلس یا زمان یادتونه گفتیم آشورا اسلام را زنده نگه داشت کربلا اسلام را زنده نگه داشت خب زمان مثل وقت و, و من یج علول ولدانشی با که مثال زدیم فل مجاز العقلی، فا این البلاوته توجه با ان یختار هم بعد یادتون باشه اینو من قبلا گفتم گفتم ما سبب رو اگه میخوایم بیاریم بذاریم و اسناد بدیم فعل رو به او باید این سبب سبب غریب باشه سبب اصلی باشه تو مجاز عقلی گفتم اگه یادتون باشه نادر شاه میتونیم بگیم اندوستان رو فت کرد چون نفر اوله یوسف و ابناه هم فرعون این کارو میتونیم بگیم اما اگر یوسف دوم بخوایم نسبتش بدیم به هامان که نفر دوم بعد از فرعون نمیشه سبب باید سبب اصلی باشه تو فهمیده بشه نادرشاه اگر مثلا یه میرزا بیگی داشته که نفر دومش بوده و فتح دوستان او هم به عنوان نفر دوم سبب بوده ما نمیتونیم به اون اسناد بدیم باید سبب اصلی باشه اینو گفتیم بعد یادتون باشه گفتیم مکان و زمان باید مکان و زمان مختص باشه آشورا میتونیم بگیم درست چون روز آشورا متعلق به امام حسینی کربلا متعلق به امام حسینی منیمتونیم بگیم عراق باید زمان و مکان نسبت به اون فعلی که میدیم اختصاص داشتش داشت. درست شد؟ ول مکان و زمان ان که معین کنه میگه وعیزا دقاق تن نظر حالا اگر تو دقیقت تو ببری بالا رهیت امن اقلب به المجاز المرسر و العقلی میبینی که اقلب انواع مجاز المرسر و عقلی درست شد لا تقلوم مبالغت بدیعت میبینی همه این خب به نوع این مبالغه زیبایی توشه بدیه یه نیسیم که من یکتون مبالغه جل و اصحابه هم فیازانه هم گفتی من بتونن انگوشت و کلش رو تو گوشتون بکنن میکنن توی ح... مثلا نادرشاه دوستان رو فرد کرد خب ما مبالغه کردیم همه فرد رو نسبت دادیم به نادرشاه میگه توی مجاز تو خیلی جاهاش مبالغه موج می‌زنه مبالغه هم یکی از اون فواید مجازه که اگه دقت کنید میتونید تو خیلیاش مبالغه رو ببینید و اذا کن نظر رأیت ان عقل لبعض ضرب المجاز المرسل ولا عقله لا تخلو من مبالغه خالی نیست از یک مبالغه زیبا ذات اثرن که صاحب اثر تاثیرگذاره فی جعل المجاز رائع تاثیرگذار است در این که ضرر بده مجاز رو رائع زیبا خلاب دلچسب م? یه مبالغه تو توشه که اون مجازه قشنگش میکنه زیباش میکنه درست شد یا نه؟ مبالغه توشه دیگه مثلا توی جد جددک که ما گفتیم جده تا جدن حالا شد داره مبالغه میرسونه یعنی نه تنها تو کوشش کردی بلکه کوشش کردن تو هم داشت کوشش میکرد مبالغه هست دیگه پس یکی از فواید مجاز ممکن مبالغه باشه نه که همه جا مبالغه هست تو یک سرش مبالغه هست تو یک سرش فایده لفظی هست تو یک سرش ایجاز هست آه؟ خلاصه مجاز دارای فایده و الا ما مرض نداریم حقیقت رو رها کنیم بریم سراف و مجاز درسته که زبانمون بازتر توسعه سخن هست ولی فواید دیگر هم وجود داره و ازا نقطه نزل را عید هم نه آغاز و زروی مجاز المرسلی، بلکه اولیه لاتخلومن مبالغات بدیعت ذات عسر. فی جعل المجاز را در این که مجاز رائعا خلابه. در اینکه مجاز روزی با بودن چه اشاره؟ الان نگاه کنید. میگه ات لغول کل علی الجزء کل رو بگی و اراده جز کنی مبالغات. مثل جعل و عصا هم فی ازاله. چشم بگیم و اراده جاسوس میکنیم یعنی میخوایم بگیم جاسوس همه چیزش به چشم شیم درست شد؟ فا اطلاق الکل علال جزعه مبالغتون و مثله اطلاق الجزء جز و اراده الکل کل رو بگیم اراده جزء کنیم جز رو بگیم اراده کل کنیم مبالغه است دیگه کما ازا هول. الان نگاه کنید شما اگر اینطوری بگید بگید فلانون فمون فلانی همش دهنه فلانی فقط دهنه خب فلانی فقط دهنه؟ نه فلانی دست داره پا داره چشم داره گوش داره شکم داره این که ما میگیم فقط دهنه مبالغه نکردیم یعنی انگار که این آدم به جز دهن یه چی نداره ما هرچی نگاه کنیم فقط دهن میبینیم مبالغه کردیم دیگه یعنی هرچی میرسه میخوره اونا میگن فلانی فقط دهنه یعنی هرچی میرسه میخوره سیر نمیشه ما هم میگیم میگیم فلانی فقط شکمه نه این فقط که بابا این به جز شکم هیچ چی نداره اون بابا دروگه یعنی چی یعنی انگار از نوک سرش تا نوک انگشت پاش همش شکمه اونا گفتن انگار از نوک سرش تا نوک انگشت پاش همش دهنه مبالغه است دیگه جز اگفتیم و ارادهی کل کردیم اون یه جسمه اما ما از این جسم فقط دهنش رو دیدیم فلانون فهمد تورید و اندهو شرحان منظور دیدیم که این آدم تریسه شرحان یلتقمو کل کلشه همه چیزو رو لغمه میکنه یلتقمو ما کلشه ما میگیم فلانی شکم جز رو میگیم یا نگاه کنید شما برگردید بگید فلانالعنفون یکی رو نگاه میکنید یه بینی گنده داره میگید که همش دماغه مبالغه است دیگه نیست این نخیر این دماغ یه از اوست ولی چون بزرگتر از حد معموله ما مبالغه کردیم دستش رو گفتیم از اول نوکه انگشت پاستار همش دماغه این مبالغه رو شما توش میبینید یا نه این خیلی مبالغش بیشتر از اینه که بگیم فلانی دماغ بزرگی داره یعنی ما اومدیم کل نهی کنه او رو دماغ کردیم مثل اینکه که بگیم فلانون انفون این دو دارن تصفهو به ازمل الانف موقعی که میخوای او رو توصیف کنی به اینکه که دینی بزرگی داره این دو دارن تصفهو به ازم الانفه فتوبالقه و تاجاله كله پس مبالغه میکنی و همه پیکره او رو بینی قرار میدی مبالغه کردیم مبالغه یکی از فنون بقول خودمون زیبایی بیانه یعنی غرض ما رو میرسونه ما مطالبمون رو با گاهی اوقات با مبالغه بیان میکنه اصلا مبالغه گاهی اوقات باعث میشه که طرف رو سر جاش بشونی یعنی به جای اینکه ده تا به او با قول خودمون حرف نامربوط بزنی که او بسوزه یه دونه مبالغه آمیز که به او بگی همین کار رو انجام میده درست شد قطعا اگر به او بگی این آدم همش بینیه خیلی بیشتر آتش میگیره و مزمت میشه تا اینکه بگی دماغ بزرگی داره نباه کنید. فلانون انفون این دماغوری دارن تصفه او به ازمه تو توبالغه فاجعانا كله عن فهمش هر بود حالا یه مثال میزنم میگه نگاه کن ادیب اینطوریه و من ما یو اثر و از چیزهایی که یو اثر قبلا اینو گفتیم اثر یعنی روایت یو اثر یعنی یوروا از چیزهایی که روایت شده معصور یعنی مروی روایت شده و مم ما یو اثر و از چیزهایی که روایت شده ان بعض لعدبا نجا بعض یعنی یکی و چیزهایی که روایت شده از یکی از ادبا و چیزهایی که ما از یکی از ادبا دیدیم به ما رسیده اینه فی وصف رجل عنافی عنافی یه عدیبی در توصیف یه آقایی که بینی بزرگ داشته دماغ گنده بوده ما؟ در توصیف او اینطوری گفته و من مایو یثر ان بعضل فی وسط رجلن انافین انافین قوله ما خبر مقدم هم از مواردی که رسیده است از یکی از ادوا در توصیف شخصی که بینه بزرگی داشته این کلام برگشته گفته لست ادری تجاهل عارف کرده یعنی خودشو زده به اینکه نمیدونم خود این که مگه نمیدونم وللو این مبالغه از خودش نست و عدری نمیدونم بهش میگن تجاهل عارف یعنی کسی که عارف میدونه خودشو تجاهل میکنه میگه نمیدونم نست و عدری نمیدونم اغوفی انفهی ام فی گفته خانم نمیدونم این آدمه تو بینیش بود یا بینی توی این بود یعنی من نمیدونم اصلش بینی بود که یه دو تا دست و پا او اینا بهش چسبونده بودن یا نه اصلش خود این تن این بود که یه دماغ گنده بهش چسبونده و چی فکر میکردم کدوم اینها اصله کدومش فرعه جسمش اصله بینی رو به اون چسبوندن یا نه بینی اصل اینه این دست و پا رو بهش چسبوندن و هرچی فکر نفهمیدم؟ نفهمیدم خیلی مبالغه کرده چقدر مبالغه ای در این مطلب کرده خ شکر که شما میدونید که خب بدن او جسم او اصله وی اون کییللو هشت و نیم کلوش بدن او نیم کیلش بینیشه بینشه خیلی هم گنده باشه خب؟ اما این مبالغه کرده گنده نمیدونم اصلش دماغ بود دست رو پا گذاشته بودن یا اصلش بگید جسم او بود که این دماغ رو بهش تسمموننده بودن خب چقدر مبالغه کرده با یه لحظ و ادری هم که گفته لست و عدری اقوقفی انفهی نمیدونم او در دماغش ادغام شده بود اما انفهوقفی یا دماغ او در ادغام شده بود گاه کنید ممالبط چقدر فر میشه می میگه که الانافی ال انافی یعنی عظیممون یعنی کسی که بینی بسیار بسیار بزرگی است ببینید بحث مجاز به طور کل تمام شد ما مجاز رو تقسیم کردیم داد شد گفتیم یه مجاز لغوی داریم یه که بهش لفظی میگیم یه مجاز اصلی. مجاز لغوی رو تقسیم کردیم گفتیم علاقه مشابهت داره میشه استاهه علاقه غیر مشابهت داره میشه مجاز مرسل بعد خود اونی که علاقه مشابهت داره گفتیم در یک کلمه باشه یا در ترکیب باشه تقسیم کردیم که به استحاره مزرد و مکنی یه طرف و استحاره یه دن یه طرف دیگه مجاز مرسل هم تقسیم کردیم درست شود مجاز مرسل رو هم تقسیم کردیم گفتیم یه مجازی داریم در مفرد یه مجازی داریم در کلام مجاز در ترکیب که این مبحث رو هم برای شما بیان کردیم حالا پلن مجاز قول خودمون بیان شد و آنچه که برمیگشت به مجاز رو ما برای شما گفتیم درست شد و مبحث رو برای شما رسوندیم ظاهرا توی مباحث قبل خود من مباحث قبلم اون مجاز مرسل مرکب رو نخوندم مجاز مرسل مرکب رو نخوندم یعنی شما الان بحث مجاز مرسل رو بیارید مجاز مرسل رو بعد توی اون مجاز مرسل گفتیم که مرکبش رو چون خیلی کمه تو حاشیه گفته مجاز مرسل رو مرکبش رو توی حاشیه گفته این رو من برای شما نخوندم و باقی موند الان به ذهنم رسید که مجاز مرسل رو اون قسمت مرکبش رو نخوندم الان میخوام براتون بخونم که بدونید دیگه چیزی نداد ببینید گوش کنید گوش کنید. توی عبارت کتاب ببینید میگه و من المجاز المرسل نو اون یغال لهو المجاز المرسل المرکب از مجاز مرسل یه نوعی هست بهش میگن مجاز مرسل مرکب کدوم؟ کدومه خود. اینه و کل کلو ترکیب اصطرم نفی غیر مابوز عله غیر المشابد هر ترکیب و کلامی که استعمال بشه در غیر موزانله خودش هر ترکیبی که استعمال بشه در غیر مابوز عله خب علاقه داره بگید و علاقهشم غیر مشابهت، چون اگه مشابهت باشه میشه استعاره تمثیلیه و اینا. هر کلامی که استعمال شده در غیر موضوع آن خودش. هر کلامی ترکیبی که استعمال شده در غیر موضعند. ببین الان یه مثال من بزنم. یه مثال. گوش کنید. الان فرض کنید که من رفتم خانه مثلا مادرم اون یه دونه مثلا گلدون خریده خیلی گرون قیمت به من بگه این گلدون خریدم میگم خوب باشم میرم میارم تا میرم وردانم بیارم میافته زمین میشکنه من بگن شکست شکست شکست این شکست. یعنی گلدون شکست این یه جمله است آیا من این رو به اون گفتم برا خاطر این که بفهمه که شکست، اون که خودش میدید این کلام برای اون گفته شده که اون بفهمه درست شد؟ نه بلکه از این کلام اراده دیگری شده یعنی من دارم قصه میخورم یعنی اتحسر و. یعنی احزن و ناراحت هم دارم قصه میخورم لذا اون هم میفهمه با اون که مانر من پیرم باشه اون رو میفهمه میگه قصه نه خوب. مهم نیست یکی دیگه میخواییم اینو بفهمه. ببین کلام الان اومد اما نمیخواست شکستن رو بفهمونه مخواست قصد خوردن رو بفهمونه حالا مثلا فرض کنید که شما همه توی یه کلاس نشستید توی یه کلاس نشستید خب اسامی قبولی ها رو میان میزنن به تخته منای که قبول شدن برای کارشناسی هر همه میبینن یه نفری که قبول شده، دو نفری که قبول شده بلند میشن میگن قبول شدیم، قبول شدیم، قبول شدیم. این قبول شدیم، قبول شدیم، خبر میدن. همه میفهمن که این منظورشون از قبول شدم، قبول شدم که داره میگه یعنی چی؟ یعنی خوشحالم کیف دارم میکنم منظور اینه چون قبول شدن سبب است برای کیف کردن. ندارم کیف میکنم چون قبول شدم. اونجا هم غصه چون شکست. برای شده نه؟ یه جمله سبب مسبب هم جایی اون یکی نشست لذا اون همکلاسی هم میفهمن اگر یه همکلاسی خوبی باشه آدم سالمی باشه میگه مبارک باشه کلا ما هم خوشحال شدیم که شما غمو اما اگر یه آدم حسودی باشه برمیگرد چی میگه میگه بشین بابا کور که نیستیم خودمون داریم میبینیم اقمال شده همگر اون میفهمه که این داره خوشحالی میکنه میخواهد بزنه تو زخ بشه. حالا اینم همین طوره نگاه کنید بهش میگن مجاز مرسل مرکب وزاره که کل جمل خبرییت مثل جمله های خبریه قبول شدم قبول شدم یا شکست المستعملت فیل انشاق که استفاده شده در انشاق یعنی بیان کردن ایجاد کردن قصه که قصه درم میخورد خوشحالم ها المستعمله فيلنشا نه تحصر. انشا انشاء برای تحسر هست خوردن یا برای خوشحالی درست شد نه تحصره و اظهار الحزنه کمافی في قول ابن الرومی مثل اینکه ابن الرومی دلیل میگینه با بدین میگه با نشباب بانه یعنی افتر از رفت بعوده دور شد جوانی جوانی رفت اینطوری میخونه جوانی رفت این داره یعنی حسد بخوره از رفتن جوانیش الله خبر نمیده به ما که جوانیش در نگه بان شبابی فعظم اطلبه جوانی رفت دیگه محال طلب کردنش دیگه نمیشه طلبش کرد جوانی رفت دیگه به دستم نمیاد. و که بینی و بین او بین من و بین او خیشاوندی از بین رفت دیگه ما با او هیچ ارتباطی نداره این یعنی این قطعه. قطع شده بین من و اون نسبت این که داره اینو میگه باید با حوزنه اندوه بخونه آه؟ جوانی رفت. دیگه نمیشه به دست نمیخواد خبر بده داره اظهار حوزن میکنه تحصر میکنه یعنی دارم چرا؟ چون جوانی از دستم هم؟ نگه هازالبیت فه مجاز و مرسل مرکب مجاز و مرسل مرکبه علاقتوه از سببی سبب رو گفته اراده مسبب کرده سبب رو گفته که رفتن جوانی است اراده مسبب کرده که قصدارم اندو ناکر علاقت علاقتو از و ولقرینتو قرینه فرینه حالی است که با خوزن اندوه میگه جوانی ده. یا اون داره میپره هوا میگه قبول شدم قبول شدم فرینه حالی است فعن ابن رومی زیرا ابن رومی لا یورید ال اخباره. پس نداره خبر به ما بده که بدونید جوونی من تموم شده دیگه نمیشه به دستش بیارم دستش خبر دادن نیست که ما میگیم زید مرد خبر میدیم زید آمد خبر میگیم لا یریدو علی اخباره بلکه نهو یشیر مسته و از این که الانال نمیشه یعنی استولا میگه لا یریدو علی اخباره بلکه نهو یشیر الی مسته و من الهم و به فراغ شباب بلکه اشاره میکنه با آنچه که چیره شده از بر او از غم و قصه غم و قصه ای که پیدا کرده به سبب فراغ شباب یعنی بانشبابی سبب رو گفته اراده یه؟ بگید مسبب گفته شکست شکست داره میگه اراده قصه خوردم داره میکنه که قصه میخورم دارم لذا اونم میفهمه میگه قصه نخور فدایی سر دیگه میخریم این مجاز مرسل مرکبه سبب گفته شده و اراده مسبب شده و این رو ما زیاد میبینیم خودمون هم دیدید که به کار ولی به اندازه اصل مجاز مرسل در مفرداتش نیست به همین دلیل این آورده در پاورده ازش استفاده کرده مجاز مرسل، مجاز عقلی، استعاره کلن مجاز قمون یک بحث دیگر باقی مونده کنایه که انشالله برای شما بخونم کل سرفصل این درس شما بگه تمام میشه و اون که قرار بوده توی این ترم بخونیم به طور خیلی خوب و درجه یک با هم خوندیم و انشالله شما هم یاد میگیرید و به دردتون میکره در طول زندگیتون موفق و معید و منصور باشید در کناه خداوند متعال با عزت و, و شرف زندگی کنید التماس دعا موفق و معید و منصور باشید خدای نگهدار و سلام علیکم برحمت و, رحمت و, رحمت و رحمت.